Ahmadi boy boy, Ahmadi boy. boy boy, Ahmadi boy boy, boy. سلام من کامبز حسانی هستم امروز 25 خورداده و این قسمتی دیگر از پادکست در ساعت 5 از محصول کمپین بینال ملالی حقوق بشر در ایران یکی دو هفته دیگه علاوه بر این پادکست برنامه تلویزیونی پولیتیک میاد بیرون الان که من دارم با شما صحبت می کنم حسن روحانی تاز شمارش آره است ولی هنوز به پنجاه درصد داستان نرسیده که به زایت کشور قاطعانه تصدیم بشه شاید تا آخر این برنامه برسه ما اون موقع اعلام می میکنیم گفتم امروز 25 و پنج و یادم اومد که چار سال پیش در چونین روزی سهراب عرابی با تیر مستقیم کسی که هرگز ندانستیم کیست کشته شد و هنوز قاتلش معرفی نشده این برنامه, این برنامه, برنامه به سهراب و همه اونهایی تقدیم میشه که امروز نیستند و مطالباتشون چار سال پیش چیزی بیشتر از آنچه امروز با پیروزی روحانی به دست میاد نبود به افتخار همه اونهایی که نیستند ایگنج دارو بر برخستگان گذر کن مرهم به دست ما را مجروح گذاریم. عمری دیگر بباید بعد از وفات مارا عمری دگر بباید بعد از وفات مارا که این آمده نمودید که این آمده نمودید هم درو می دارید هم درو می دارید خب از رئیس کل مملکت شروع کنیم آیت الله خامنه ای تشریف بردن حوزه رعی گیری و یک رعی که هیچ کس نمی کیست را انداختن تو صندوق و بعدش بدونی که کسی ازش بپرسه شروع کرد به دفاع کردن از خودش که آقا والا به خدا من این دفعه به کسی به کسی هم نگفتم تا الان حتی ف... کسان نزدیک من خانواده من فرزندان من متلعه نیستند که من به چه کسی رعی دادم خب من کسی ازت پرسید اصلا به چه کسی رعی دادی که داره جد چرا لو میدی خودتو این کسی ازت سوال کرد شما رفتیم اونجا و بایستید داری حرف کسی سوال که ازت من یادم ما بچه بودیم تو حال خونم و فوتبال وازی میکردم یه بار زدیم یه گلدون خیلی قشنگیر که مادرم دوستاش شکون چیکستیم. بابام سر کار بود بعد سریع رفتم شکستاره جمع کردیم همین که پدرم از سر کار برگشت تا در رو باز کردم بهش گفتم چیه من گلدون رو نشکندم بردرم شود زد حالا شده قصه شما من کسی ازت پرسیده بود خب حالا توصیه چی داری؟ همیشه ما ملات قهرمان منتظریم شما توصیه کنی ما عمل کنیم توصیه کن یک توصیه به این حضرات محترمی که مسئولان صندوق ها و مسئولان بازشماری و قرائت آرا و اینها هستند یه توصیه به این عزیزان دارم و اون این است که بدانند که رأی مردم امانتی است دست اونها و حق الناس امثال شد حق و ناس چهار سال پیش حق کی بود حق الناس ناس برای اون طرف نسناس زدی کشتی نابود کردی تا موسوی رجوی نشه حالا شد حق و ناس برای ما خب حالا تهدید چی داری همیشه ما منتظریم تو تهدید کنی ما عمل کنیم بترسیم تهدید کن اخیراً شنیدم که از شورای امنیت ملی آمریکا کسی گفته که ما این انتخابات ایران قبول نداریم خب به درک که قبول نداریم آه بچی به, به درک که قبول نداری آقا ما تو رو هم قبول نداری فکر نکنیم ما تو رو هم قبول نداریم ما به درک که قبول نداری واا اگه اینجوری ما خیلی چیزا رو به درک قبول نداریم ما چون این آقای روحانی چ هم ما همشین 100 درصد قبول نداری ما درک که قبول نداری ما تضم فرایاند انتخاباتت ما قبول به درک که قبول نداری شورای نگهبان ما قبول به درک که ها با اتوبوس ته که من اصلا به درک قبول نداری سعید امامی بازی تو به درک قبول نداری شاخ شون کشیده های ولایی تو به درک که قبول نداری ارگان های موازی تو به درک که قبول نداری رئیس 가مور تدارکات چی تو درک که قبول نداری سیاست هسته ای تو به درک که قبول نداری وزیعت زنات و مملکت تو به درک که قبول نداری چمق دریه سینما آتش بزن تو درک که قبول نداری موسیقی نابود کردن تو درک که قبول نداری تیاتر را به فنا د درک قبول نداری. پاسدار سردار رئیس باشگاه کردن تو. به درک قبول نداری. تورم کمر شکن تو. به درک قبول نداری. روزنامه روزنامه روزنامه بستن تو. به درک قبول نداری. زندانی سیاسی تو حبس داشتن تو. به درک قبول نداری. حبس موسوی کروبی دهنورد به درک قبول نداری. فیلترینگ اینترنت تو به درک قبول نداری. سیاست ذوب ولایت تو به درک که قبول نداری. مرتضی درک قبول نداری وضعیت حقوق بشر به درک قبول نداری جنتی تو به درک قبول نداری این به درک قبول نداریم ما شما را ما قبول نداریم این یعنی این این به درک قبول نداریم اینم ما قبول نداریم خب به درک قبول نداریم خب از به درک قبول نداریم که بیایم بیرون میرسیم به شما ما پرسیدیم اگر شما میخواستید یک جمله به آی خاملی بگید چی میگفتید و شما گفتید خیلی هم گفتید مرسی از همه کسانی که تلفن زدن زیاد بود ولی ما به علت وقت و حوصله برنامه چند تا رو به سلیغه بروعکسی که اینجا توی برنامه من کمک میکنن. انتخاب کردیم و الان پخش میکنیم براتون شما اگر میخواستی یه جمله به خامنه ای بگی چی میگفتی؟ من خواستم به آقای خامنه ای بگم عزیز من امپراتون شاه آقا تو خیلی خوبی ولی جون مادرت این رعیه ای ما رو درست بشمارین دوره نوکره تن میخواستم این جمله رو به آقای خامنه بگم اگر میتونستم که آن کس که عرض داشت قبارش برو نشست این او من نگاه کن من نگاه کن باختی آقای من باختی چهار سال سرگو کردی هرش سال سرگو کردی باختی آقای جمهوری اسلامی احور معظم باستم از اد بخوسم موقع که طلبه مبارز بودی در کلمه دیکتور تو چه تفاوری داشتی میخواستم به از این خوشتر تصورت کنم به افراد بزرگ که نامو تبریک بگم که رعی باطلی بیشتر از مقدار رعی بود که ایشون گرفتن امین سلام نخستم جمعه برای آقای خامنه ای بگم بگم که حضور مردم و چه امسال و چه چهار سال پیش و چه اون زمانی که به آقای خاتمی رعی دادم توی دوره دو دوره شون به نفع خودشون و به رعی مشروعیت به نظام برنده نبینن و فکر نکنن که مردم به مشکلیت نظام رعی داده مردم برای مخالفت به نظام و برای مخالفت با زلایت مطلقه فقیح اومدن رعی داده همیشه یادشون باشه که این همه مردم مخالفش مردم. من من میخواستم به مقام عظمه بگم که امروز ما پایی صندوقای رنگ رفتیم با دستانداری سبزمون هم رفتیم تا به شخص ایشون بگیم گمان نبر که به پایان رسید کار مقام هزار بادی ناخورده در رگ ر بله وقوم پیقاناً اینه آقا خاام ای ما مملکتمون رو خیلی دوست داریم به این راحتی همدش دست میکشیم خودت دست بکشیم. خب خیلی ممنون از تمام کسانی که تلفن زدند و پیام خودشون رو به خامنه آی خاامن ای رسونت اما در میان این پیامه که ما مایم میچرخیدیم یه چیزایی پیدا بکنیم یه پیامی هم ما بهش برخوردیم که الان پخش می اینو گوش بدید تا حالا بعدش با هم صحبت کنید. اما از دستی درخواست دارم کامید. چون من دو سار دارم برنامهات رو میبینم این امروز روز خیلی بعد بود برای من. و مادرم رفته بود آزمایش بده. بعدم معلوم شد شو آزمایش چه چیز داره. سرسان محاجمی داره. بعدم گفتم به تو که حالا چه تو اینترنت چه تو فیسبوک، چه تو برنامه Ellos funny beg yad be mar'dum ye du'a'i bokane ye chizi. And avan kasi an ke dar khas mikone az astayi. Mamnoon misham. Do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? اسکه میگیم برنامه رو زاپ میکنیم آقای روحانی حسن روحانی هنوز صد درصد پرزیدنت نشده یعنی همون 50 درصد به بالا نیومده هنوز ولی ما همین اول بسم الله یه چیزهایی رو میخوایم بهشون یاداوری بکنیم هر میدونیم که روزای سختی در پیش داره ایشون آقای روحانی روزای سختی در پیش داره 8 سال یارو اومده رددم دردوم تر شما باید یکی یکی اگه بتونی درست کنی شایدم کل قضیه با این آقا یعنی با شما آقای روحانی بره تو ته چاه معلوم نیست چی میشه دو سال دیگه معلوم نیست چه اتفاقی میفته ولی جهت خالی نبودن عریضه خدمت حسن آقا سوپرمن حقوقدان کلید به دست عرض می‌کنیم که یادت باشه چی گفتی؟ اینو گفتی؟ هر گلی به سر این مردم زدید تو این 8 سال لطفاً بس هست لطفاً بس هست قبول ولی این ق... یعنی که شما قراره که یه گل دیگه بزنی به سر ملت نه اون گلی که در 8 سال گذشته گذاشته هرچی هست فقط گلایول نباشه جون مادر اونو تجربه کردیم از این گلایول ها زیاد تجربه کردیم نرگس سفیدی چیزی یه گله. خوشگلی باشه بزنی به سر ملت خوششون بیاد دیگه چی گفتی آی روحانی؟ اینو گفتی بنده با آقای مهندس موسوی آقا. گفتی مهندس موسوی گفتی مهندس موسوی یعنی اگه نیارش از حبس بیرون خیلی نامردی خیلی نامردی اگه از حبس نیالش بیرون چون اگه امروز جرعت نکردن تقلب کنن و شما از تو صندوق اومدی بیرون به خاطر این بود که ایشون و ملت حزینه دادن چهار سال پیش شدید هزینه دادن کروبی هم یادد ندرزم، موسیی و کروبی و ره همه اینا هزینه دادن ملت. دیگه چی گفتی؟ بزار دیگه. فره هایی که در این ه سال بر روی زندگی مردم و باز خواهیم کرد. فللا رو گفتی باز میکنی فلایی که بر زندگی مردم زدن رو حالا من به تخفیف میدم همه رو نمیخواد بازکننی ولی شما اگه بتونین همین قفل بیپولی و. اقتصاد و جیب مردم و اینا رو درست کنی ما قبولت داریم همین همی اینا رو همین با اون شاکیلی دهد همین یه دونه رو درست کن دیگه چی مهم بود آها این مسئله یک کلمه به صورت مبهم بگویم امسال یعنی سال 92 سال 88 نخواهد شد آها این چی بود این چی بود مبهم گفتی مبهم بگویم یعنی چی مبهم نداریم ش... شما یعنی گو... حرفت اینه که یعنی امثال تقلب نخواهد شد قبول ما اینو مبهم ما گرفتیم ولی مبهم نداریم مردم مبهم بدر... شفاف بدرایدان نوشتن حسن روحانی و بازم از این بگم بگم و اینا قبول نیست یا یا, یا میگی یا اصلا اگه سیاست مصلحته که نگی دیگه اصلا حرفش هم نزن نگو راحت درزم روح یاد باشه مردم چی خواست از شما؟ چه شعارهایی دادن و شما هم تایید کردی این حرف شما و این هم پیامدش حمایت مردم آقاانی که کشور به این روز املاگر مردم شما نمیخوا پیامد این حرف شما ملت اونجا تو شیرودی الله و اکبر گفتند و این الله و اکبر برای ملت ایران یه پیام خاصی داره توش ما میدونیم شما میدونیم وقتی ملت میگن الله و اکبر منظورشون چیه پیامش برای آقای خامنه ای برای رفقا بود اینم الله اکبر مردم بعد از حرف شما بله این الله اکبر خیلی خطرناک بود آیا روحانی اینم گوش بده خواسته مردم از شما و شما در جواب این خواسته مردم گفتی چرا چرا زندانی سیاسی پای کنیم دست شما در نکنه همه زندانانی ها رو حالا شما اززاد نکن دو قاتلین اینا رو آزاد نکن ولی زندانی سیاسی رو یادت با شای روحانی. دیگه چ ها دختران ما؟ دختران ما در خیابان های احساس هم میگکن؟ خیلی مالی ما همه همین رو می‌خویم دختران ما زنان ما احساس امنیت کنن در تاکسی مترو اتوبوس ولی جهت یادآوری عرض کنم که اینم گفتی آره ما نخواهم گذاشت ماموریی بینیو از کسی سوال پا مالی لباس شخصی دیگه نخواهیم داشت در دوره شما هر کس میخواد از مردم سوال کنه در خیابان یونیفورم خواهد داشت کارت شناسایی خواهد داشت و از این حرفا و شما در حظیم گفتی که زن و مرد یکسانند در یک خدا درنت بشنبه اقلیت هم گفتی حمایت میکنی؟ یعنی کردا و آزریا و بقیه که در حقوقشون اجهاف میشد در این مدت اچافت نمیشه و به حق حقوق انسانی و شهروندی خودشون میرسن بدین ترتیب. و و و و و گفتی این کار این دانشجو بیچارهم درست کنی این دانشجو ستاره دارم گفتی درست میشه کارشون این خیلی کار درستیه اگه این کار انجام بدیم ممنون میشیم واقعا دانشجو ستاره دانشگاه کناار گذاشته شده باید و مهمتر از همه گفتی که حقوقدان هستی ای روحانی و سرهنگ نیستی و مملکت از این پس پادگانی و امنیتی نخوحت بود. من جزء افرادی هستم که حقوق خوندم. من سرنگ نیستم. من حقوقدان هستم. همه اینا حرفی قشنگی بود. آی روحانی و ملت رو حساب این حرفا و بر اساس اعتباری که موسوی برای شما جمع کرده بود به شما رأی دادند. حالا ما نمیگیم شما همه اینا رو همون روز اول بپر و از فردا ایران رو گلستان کن. ولی برای هر کدوم از اینها شاید باید جلوی بوت بزرگ وایسی ببینیم چیکار کار میکنی پلوون منم هر هفته اینجا برد کنتور میندازم ببینیم و تعریف کنیم ای کاش پیکان نقد ما به شما که میرسه شرمنده بشه و اینجوری بیفته پایین ولی اگه هم چهار تا نقد کردیم به نخوره دیگه نیت خیره آهنگ خوشحال بزر برای حسن آقای در این برنامه به جای مصاحبه با یک نفر ما یک سوال رو از چهار نفر پرسیدیم حادی قایمی مدیر کمپین برمالی حقوق بشر در ایران محمد نوریزاد روزنامندگار و مستندسات ساکن ایران و همینطور حاجر رسمی مصلق مادر ندا آقا سلطان و پروین فهیمی مادر سهراب عرابی ندا آقا سلطان و سهراب عرابی جفتشون در حوادث پس از انتخابات 88. جان دادند ما از این چهار نفر این است انتظار شما از حسن روحانی به عنوان رئیس ایران چیست آقای قائمی بفرمایید خانم با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز وقت بخیر مردم ایران بیروز با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیام بسیار واضحی رو به حکومت کردند و به نظر من به طور واضح نشون دادند که خواستار تحقیقات اون در شرایط داخلی و داست های خارجی حکومت می باشند انتظاری که از روحانی میره در حقیقت وقتی که پروسه ده روز گذاشته رو نگاه می این مردم نبودند که از اول به سوی روحانی رفتند بلکه روحانی بود که متوجه شد که در بطن جامعه درخواستا چی هست و تا حدی اونا رو مطرح کرد و به سوی مردم رفت و مردم هم به اون جواب مثبت دادن این درخواستا رو که نگاه میکنیم در سه بود میبینیمش اول از همه مردم بسیار نگرانه معارضه با جولت های خارجی یا احتمال درود به هر دونه جنگ و وزنین های نظامی می باشند و به با اون بسیار مخالفند و بسیار مهم برای ازانیگی روزانشون مردم خواستار جاست خالیدی هستن که منجر به لطل تحریم ها بشه و بازگشت و وضعیت اقتصادی که براشون قابل قبول باشه و و بسیار با همینیت در خواستهایی بود که مردم بر باشوارهاشون و حضورشون در برنامه های آقای روحانی بسیار واضح تیام رو دادن که در چهار سال گذشته ترکوب شدید سیاسی و اختناقی که بودید داشته باید برداشته بشه زندانیان سیاسی باید آزاد بشن حسد خانگی کاندیده های قبلی جویست جمهوری باید برداشته بشه و فضای آزادی بیان و خضور در عرض اجتماعی برای نهادهای مدنی باید به جامعه بازگرده آقای روحانی باید نشون بده که آیا همچنین توانایی های رو داره آیا به سوی مردم رفت چرا که میخواست به درخورتاش این جامعه عمل به یا فقط برای گرفتن رعی از آنها بود از اونجا که تابقه یه چندانی از آقای روحانی کانامی ای از شرین زنین ها به غیر از مسئله هسته این ندارین باید ببینید که در پس از اینکه ریاست جمهوری رو به اختیار میگیرد که دونه عمل خواهد کرد هیام مردم با رأی گستردشون و حضورشون این بود که از اختناقی که حکومت بر اونها امال کرده در همه از های زندگی افتصادی اجتماعی سیاسی بر علیه اون اختناق بفاخید خیددن و در حیرت به طور مستالمت آمین خواستار تغییرات گستردهی شدن و خواستن که زندانیان سیاسی ها زاد بشن هفت راه بر اون برداشته بشه آزادی بیان و آزادی هنگ منها و نهادهای مدنی براشون ممکن این پیام همچنین بسیار واضح بود که از سیاست های خارجی ایران مردم حمایت نمی کنند. از تحریم ها به هیچ وقت رازی نیستند از بسیار جنگ رفتن بسیار حراس دارند و باید بگم که برای اینکه دولت جدید بتونه به انزوای ایران در سطح خارجی پایان بده مسئله فقط مسئله حل مناوشه هفته این نخواهد بود بلکه مسئله بهبود وضعیت قبول بشه در سطح بین و ملی بسیار مهم خواهد بود برای اینکه که هر گونه مقبولیت و مشروعیتی برای دولت جدید بیاره در در نظر سنجی افکاری که در بیش از چیل کشور اخیران همین هفته پیش منتشر شد از مردم کشورهای مختلف در سال شده بود در مورد ایران یکی این که نظرشون در مورد رفتار حکومت با مردم چیست و دوم این که چه از مصبه حسده ای نگرانی دارند و در حیثت در تکتر اکثر کشورها تکتریت مردم اونها مصبه سرکوب مردم توسط حکومت مطحو بسیار برایشون در درجه بالاکری بوده تا مناقشه حقیقی در نتیجه می تکرار کنم که هر گونه تغییری در سیاست خارجی به بهبودی با بهبودی وضعیت حقوق بشر در ایران گره خورده و بسیار بسیار مثلا امری خواهد خوب تشکر از آقای هادی قائمی میریم سراغ آقای نوریزاد آقای نوریزاد شما بفرمایید که انتظار شما از آقای روحانی چیست به عنوان ریدشمپور. عرض کنم که ببینید الان ارسه برای جولان ریدشمپور در عین بسیار محیا با اقبال عمومی اما بسیار هم ریدشمپور در, در این ماهیت در تنگنای فراوانی قرار گرفته به خاطر اینکه حوزه عمل او رو سرداران استفاهی که داشتیم و دستگاه قضایی که بی‌قرضی و مشتقل نیست بسیار تنگ کردن اگر این تنگناها نبود اولین چیزی که به ذهن متبادر میشد، خواسته های معفوضه مردم بود این که زندانیان سیاسی باید آزاد بشند خاطر اینکه، دلیل زندانی شدن و حاکمیت میبایستی یک پوزشخواهی بزرگ از مردمان آسیدیده و زنان و مردمان زندانی کشیده رسما اعلام بکنه و خطاراتش رو بفردوزه آزادی حسین مفتوی همسرشون و آیه کررودی و حتما تشکیل یک دادگاه علمی اگر که حاکمیت به بیت راه داری معتقدم که اینها مغسرند به خاطر این که برود به حوضی انتخابات اخیر ورود به اقلانیت و حصر این عزیزان یک رفتار غیر اقلانی و غیر مدنی تونم در این موقعیت به خصوص که ما در تنگناهای بزرگ داخلی و خارجی گرفتار هستیم تشکیل یک محکمه و اینکه فرصت دفاع به این عزیزان داده بشه از خودشون دفاع بکنن و قطعا ما اطمینان داریم اینها بیگناه هستن و گناهکاران کسانی هستن که اتفاقا این فضاهای تنگ رو پدید آوردن مسئله اصلی دیگری که حتما باید مد نظر قرار بگیره ولی مطلقا آی روحانی به او ورود دخواهد کرد هشت سال قرامت این که به خاطر حاکم کردن فرد بیخرت و نامتعادلی به اسم احمدی نیجاد بر مقدرات این کشور بوده که سرمایه های مادی و معنوی و انسانی ما رو تباه کرد و هم مجلس و هم بهی که رهبری به هم دستگاه قضایی با تمام استعبادشون از این فرد نامتعادل در این هکت سال حمایت کردن حد دقل توی هفت سال حمایت کردن و این سال آخر رو به یه تعبیری بصلا از کنار او عبور کردن مطالبات دیگه مطالبات داخلی است یعنی برداشتن سانسور بزرگ و پارازی انداختن که ناجوان مردانه باعث ویماری های و سیاره های شده برداشتن سانسور از شاکلی رسانه های مجازی و مکتوب هست و بررسی بسیاری از آسیب هایی که مردم دیدن و کسی نیست به اونها پاسخ بده و درخواست مؤكد از سیستم غذایی استقلال خودش رو حفظ کنه و به به متهمین اجازه دفاع بده در عالی ترین وجه ممکن و اصلا درخواست یک تغییرات بنیادی در سیستم غذایی و اینکه نمیدونم آقای روحانی های خواهد توانست در برخی از مسائل حساس مثل این که چرا ما باید اصلا در سوریه حضور داشته باشیم و سرمایه های پولی ما سرازی رویشه سمت حضبالله و بره به دست بشار اسد که او در اونجا کشتار بکنه اینها به اضافی اینکه که آقای روحانی میتونه ورود کنه به حوزه وسیع دخالت ها و غارتگری های سرداران سپاه که در بسیاری از مواقف این کشور حضور دارند و سرمایه های مارومی رو بند بدونید که پاسخ بو باشد آیا آی روحانی میتونه اسکلاهای قاشاق رو یکی یکی تحتیم رو آیا میتونه سرداران سپاه رو به قادران ها برگردونه نمی دونم باقیتش انتظارات خیلی فرابونه و من خودم رو به جای آقای روحانی می دارم با چارچوبی که در این نظام تعریب شده و این آواخر مشاهدش بودیم احساس میکنم قدرت منور آقای روحانی در محدوده همین مایحتاج مرز و عمره نظم دادن استباتات دیپلماسی جهانی مثلا در همین محدود خلاصه بشه حالا یه روزنامای جدید منتشر بشن نشریات ج و اگر نه توی امه ها که که اتفاقا هست و گرفتاری بنیادین ما در اونجاست غیر می دونم ایشون ورود بکنه خب مرسی از آقای نوریزاد تشکر میکنم از شما میرسین به خانم هاجر رستمی مسلط مادر ندا آقا سلطان خانم رستمی انتظار شما چیست؟ است من هیچ انتقادی ندارم قرار است اتفاق بیفته ان نمی... اصلا نمی شاید اتفاقی افتش شاید نه فقط می دوران که راه روحانی حرمه کاری بکنم تشکر می کنم خانم رستمی میرسین به خانم پروین فهیمی مادر سهراب عرابی در این قسمت از برنامه خانم فهمی انتظار شما چیست از رئیس جمهور جدید مالا اصمان در این مسئله همیشه فکر میکردم هم. مالا هر کسی حالی به جمهور میشه چه از این سمت که از اون سمت اصلا مهم نیست مهم اینی که اون شخص که به جمهور میشه یا رهدر میشه یا هر کسی چقدر میتونه ادالتو تیگه کشور برقرار بکنی چقدر میتونه قانون و امنیت و آرامش و انسانیت و اینا رو برقرار بکنه درمید مخصویل مادیات و این درمان اهمیت نداشت مفلی این کشتشدن این بچه ها که این خونهایی دونها که بناها ها کشتشد شد یا اوا این جووقه ما بچه های ما که از بین رفن واقعا هم تایبال من الان به لیزار ها و مع الان دارمن بر می گردم به خودده دی از ممسافرت از سفر مکم اومدم اونجا هم خیلی به خدادهدا نیاز کردم بعد دقیقا تنها خواصی ای که داشتم این بودش که مردم ما به اون چیزی که واقعا دارن یعنی پایان هر دونه ظلم و سهتم به پرشورم در جای در جای دنیا باشه و فقط آرزو سهتم آرزوی صغرابا من داشته این بود قسمت دیگر از پادکست در ساعت 5 عصر ملت همین الان خبر اومد که حسن روحانی با بیش از 18 میلیون رای رئیس جمهور منتخب ایران شد به ایرانیانی که بهش رای دادند تبریک میگیم از اینجا و امیدواریم به روزهای بهتر برای ایران و ایرانی آقای روحانی خوش اومدی به زیر میکروسکوپ این برنامه تا هفته دیگه و پنجه عصر دیگه مثبت بمانید و امیدوار که از این رئیس جمهورا زیاد اومدن رفتن تهش میمونه خوشحالی قلبی خودش و خانوادت از زندگی و بقیهش همش کشک جان تو این هفته آهنگ پایانی برنامه رو به همکار از دست رفته ایمان محمود احمدی نجاد تقدیم میکنیم حالشو ببر محمود خان <تصفيق>